بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند تکشندیه مهربان. آل إسماعیل. آل؟ آل. لامی. لام تلک آیات الكتاب الحکیم. این آیات کتاب حکیم. بِذَنبٍ وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ. برای نیکو پرحمت، براوگنی کو کاراونا. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم دارن، زکات را ادا و به اخرت یقین دارن. اولائی که من ربهم و آنها بر طریق هدایت پرباد کار شان و آنها جان رستکاران وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ ليضل عن عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَسْتَخِذَهَا هُزُوَا اولئیک لهم عذاب محین بعضی از مردم سخنان باطل و بیهوده خریباری میکنند تا مردم را از روی جهل و گمراه ساتند و آجات را با استهدافی را برای آنها عذاب خواهد ان کنندهیم و اذا تتلاع ولا آیاتنا و لا لم يسمعها کئن نفی اذنی وقرا فبشره بعذاب أليم. هنگامی که آجات ما بر او خوانده می شود مستقبرانه روم برمی کرداند گوی آن را نشنیده گوی اصلا گوش حال است او را به عذاب در لهم جنات سه ولی کسانی که ایمان آبرده و عمل صالح انجام دازه دا اند باغهای پر نعمت بهش از آن آنها خالدین فی او الله حقا و هو العزیز الحکیم جابدانه در آن خواهند ماند این بعدی مسلم الافی و او عزیز و حکیم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا إلى السماوات ان آسمان ها را بدون ستونی که قابل رؤیت باشد آفرید با در زمین کوه های تا شما را بلنده در نیاورد و هر گونه جنبنده روی آن منتشر کرد، و آسمان آب نازل کردیم و بواسطه آن در روی زمین انواع گوناگونی از چاه های kia ها به ارتش رو هذا قال الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلام خدا اما من نشان دهید معبودانی که غیر او هستند چه چیز را آفریدند ولی ساقمان در قبرکی آخخا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلَّهَ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْدِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِينٌ ما به لقمان حکمت و به او گفتیم شکل خدا را بجای آورد هر کار شاک گزاری کند به سود خیش شاک کرده ان که کفر. کفران کند جیانی به خدا نمیرساند چرا که خداوند بیاز و ستوده است و اذ قال لقمان ولده انه وهو يعظه يا بخاطر بر هنگامی راف و بفرزندشگاه در حالی که او را موعظه می کرد چیزی را شریک خدا قرار مده که شر ظلم عظیمی بود الانسان لذوالدين حملتهم امه وهن على وهن وفي في و ما به انسان در پدر و مادر استفارش کردیم مادرش او را با زحمت روی زحمت هم کرد و دبران شیر او در دو سال پایان نیابد که شخص برای من و برای پدر و مادر بچا آفر که با تشت همه شما به سوگ من است وَإِن جَذَّكَ لَأَن تُشْرِكَ بِالْمَالِ لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُما بِالدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا و هرگاه آنها تلاش کنند که موجود را شریف من قرار دهی که از آن آگاهی نداری از آنها اطاعت مکن ولی تا آنها در دنیا به طرز شایسته رفتار کن و پیروی از راه کسانی بنما که به سوی من آمده اند سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید أوَكَّهُ يا مُنَيَّ إِنَّا إِذْ إن كُمْ سَمَّا لَحْظَةً مِنْ خَرْدَلٍ فَتَتَمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا رَبُّهُ الله إِنَّ رَبَّهُ الله لَقِيْبٌ بسرم اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی عمل نیک یا شد و در دل سنگ یا در گوشه یک آف منخواب و زمین قرار دیرد خدافان آن را می آبند خدافان دقیق و آقا یا یا اقمی صلات و امر بالمعروف و انهعن منکر و اصفر این من عزم ای پسرم نماز را برقادار و امر و معروف و نحی از منکر کن باستر پرابر مسائب که با تو میرسد با استقامت و شکیبا باش که این افکار حوال مهم و اساسی ولا تصعر خد للناس ولاتمشی فی الرمرحان الله لاحب ل مبتال از مردم روی مگردان و مگورانه بر زمین راه مراو که مسلما خداوند هیچ متكبر مغوری را دور ندارد وقطد في المشيك واغطب من صوتك إن أنكر الأصواك لطوت الحميد دراه رحساً اعتدال راوه أوجيك السداوج خطبك كزاش تريد صدافا سداوج خرام ألم تروا أن الله تخر نعمه و الناس من يجادل في الله بغير علم ولا ولا اوجا خدا باند من چرا در آسمان ها و مسخر شما کرده و نعمت های خود را چه نعمت های ظاهر و چه نعمت های باکن و شما کرده و عبدون ساخته است ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی درباره خدا مجادله میکنند و ما هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید می گویند نه ما چیزی پیروی میکنیم که پدران خود را بر آن یافتید او حتی اگر شیطان آنها را باتابی او تشکروتان کناد باو تهانو تب ایجاد می کنام ومن يسلم رجلهه الى الله وهو مستن فقد استمتك بالعروت الوضع وإلى الله عاقبت الابور کسی که روح خود را تسلیم خدا کند در حال که نیکوکار باشد به دستگیر چند دارد و عاقبت همه یک به بسوی خدا و کفر بلا یخزون کففره الین این علیم و کسی که کافر شبد کفل او تراغمگی نسلتد با افتشت همه آنها به سوی ما و ما آنها را از اعمالی سانجام داده اند آگاه دا خواهیم کار خداوند، از آنچی درون سینه‌ها، آگاه نمتنعهم قلیلا ثم من الى عباد غلید. ملکنی از متاج دنیا را در اختیار آنان می کتابید سپس آنها را مجبور با تحمل عذاب شدید می کنید وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ لَا يعلمون. چه کسی ها و بتنین ز آفت میتاف مسطما میگوین الله بگو الحمدلله که خود شما معترفید ولی اثر آن ها از آن لله ما هو خداست اون در آسمان ها و ترى قد فان دنيا بشايه تتايش ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه اذغر ما نجدت الله ان الله عزيز حكيم اگر آنچه روی زمین از درختان است قلم شوند و دریا برای آن رنگ گردد و هفت دریا به آن افزوده شود اینها همه تمام می اما کلمات خدا تا جان نمیگیرد مصدما خداوند عزیز و حکیم است آفری نیش و زندگی دوباره ی همی شما همونن به آفری دنیت فارد بیشنی خدافاند شنفار و فینا علمت و ان الله یولج اللیل في النهار و یولج النهار في الليل و سخر الشمس والقمر فَتَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُنَّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ آتِ آیا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت یعنی و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه میدهند؟ دهند بیگمان خداوند و آنچه انجام می دهید آگاه ذالک بی ان الله هو الله هو العليم الكبير ان ها همه دلیل برا ما است که خداوند حق است با آنچه غیر تو می خوانند باطل است وقتی که خداوند بلند مقام و حضور مرتفعم الم در ان الفلکه تجری فی البحر بنعمه الله نریکم من آیاته این نبی ذالک لآیت آیا ندیدی کشتی ها بر صفحه دریه ها و فرمان خدا و برکت نعمت او حرکت می کنند؟ او میخواهد خواهد گوشه ای از آجاتش را به شما نشان دهد که در اینها آجات و نشانه هایی برای کسانی که شکیبا و شاد شدادند؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْفٌ كَالْظُلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْعَهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُكْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ بَهَلْقَانِكَ مَوْجًا كُنْ آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص می اما هنگامی که آنها را به بخشکی نجات داد بعضی را که اعتدال را پیش میگیرند و آجات ما را هیچ کس جز پیمان نه کفران کننده این کار یا و یوما لا يجزد. شو يوما لا يجد والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تضرن لكم الحياة الدنيا ولا يضرن بالله الضرور ای مردم از خدا بترهیدید و از روز بترسید که نفردر جزای اعمال فرسند خود را تحمل می کند و نفردند چیزی از جزای پدر را مسلمان و عدی حق حقا مبادا زندگانی دنیا شما را بفریدد و مبادا شیطان شما را مظلوط خواستد این الله عنده ذتی اووادر وم تدري نفس بأي أرض إن الله عليم از تمام مخصوص خدا و او که بارانز را نادر میک و آنچه در رحم ما درا با یک کس نمیداند فردا چه می‌دوند. با یک کس نمیداند با چه سرتمی می‌ده. می‌ده. مصلح فقط خداوند، آدم و آگاه،